أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرينالمعسومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الأرضين أرواحنا وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء قال تعالى في محكم كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وعطيء الله وعطيء الرسول وعطيء الأمر منكم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الامام الحجة صلوات الله و عليه اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها إلى روات حديثنا این گرده هم كه با عنوان هم در مبانی فقه معاصر تشکیل شد بسیار مبارک هست و یک جلسه و مجلس علمی هست تخصصی هست با همت مؤسسه فقهی اصولی علمی حوزه امام رضا علیه السلام و با همت برادر عزیز ما و مایه امید حوزه های علمی جناب آیت الله رشاد بسیار بسیار اقدام مؤثر در رشد و شکوفایی علمی حوزه های علمی است و این گونه جلسات باید به نهب گسترده تر و با حضور بیشتر علما و فقها در آینده ان الله الرحمن ادامه داشته باشد موضوع سخن در این جلسه نقش قواعد اصولی در مسائل مستحدثه فقه معاصر هست خب در درجه اول خود قواعد اصولی و علم اصول یک اشاره‌ای باید به جایگاهش جایگاهش در استنبات احکام فقهی و شرعی در سرتاسر فق من طهاره الی و نیز جایگاه ویژه آن قواعدی از قواعد اصولی و قوائد فقهی که مبانی فقه مستحدث معاصر رو تشکیل میدن و نقش اول رو دارن جایگاه علم اصول من در یک جمله خلاصه می کنم. کلی عبارت است از, از اساس و شالوده و بنیاد فقه شیعه فقه امامیه که اگر نباشد این اساس فقاهت بر اساس محکمی استوار نیست آن فقیهی که به انوان فقیه میخواد ورود در عرصه فقه بکند و بر این مبنا و شادوده استوار و پایه مستحکم تکیه نکند او فقهش اساس صحیحی ندارد و من در جلسات مختلف عرض کردم که حتی تقلید از کسی که اجتهاد در علم اصول ندارد و قوتی در قواعد علم اصولی ندارد و دست به فتوا میزند اقدام به فتوا می کند تقلید از او هم شرعا دچار اشکال است قباعد اصولی در حقیقت سببی است دلیلی است حجتی است و اون مایه اعتبار و حجیت شرعی به تمام مسائل فقهی است چه فقه سنتی من التهار الی و چه فقه مستحدث معاصر در مسائل روز و ریشه در در درجه اول سیره اغلای عالم دارد سیره اغلای عالم دو بخش رئیسی و اساسی دارد بخش محاوری و بخش عمدی آنچه که امده قواعد اصولی مبتنی بر آن است سیره مهابری عقلای عالم هست. گرچه بعضی از قواعد اصولی مثل حجیت خبر واحد حجیت قول لغوی و نظیر ذالک و بر سیره عملی عقلای عالم زده است و مبتنی است اما تمام قبائل لفظی علم اصول یعنی جلد اول کفایت الاصول و مباحثی از قبیل حکومت و ورود و تعادل ترجیح در موارد بیشمار اختلافات روایات و نصوص همه و همه اینها ریشه در سیره محاوری اغلای عالم دارد و دلیل امزا و اعتبار این سیره محاوری اغلا در درجه اول قبل از هر آیه و هر روایتی سیره قطعیه نبی مکرم و ائمه طاهرین است هیچ سیره ای هیچ فقیهی تا به حال ادعا نکرده است از سیره های که قویتر، مستحکمتر و متغنتر از این سیره باشد. سیره ای که رسول خدا از ابتدای وحی که رسالت تبلیغ را عهدهدار شد و ادای رسالت تبلیغ دین، تبیین احکام کرده است تمام آنچه که انجام میداد بر اساس این سیره بود وحی که نازل می شد آیات شریفی قرآن رو به مردم عرضه می کرد بیان می کرد بر اساس قواعد محاوری و غلائی بوده است امیر المؤمنین ائمه تاهرین در تمام آنچه را که بیان احکام می کردن در تمام عمرشان همان روش سخن و گفتمان مکالمه را اتخاذ کردهاند که سیره عقلای عالم اتخاذ کرده بودند قبل از اسلام به قرون از آن زمانی که تمدن بشری ایجاد شد بشریت برای اینکه مقاصد و مراد رو به مخاطب افاده بکنن بیان بکنند در مکالماتشون در تقنیناتشون در بیتهای مختلف گفتگوها و مکالمات و احتجاجات و تقنینات بر اساس قواعد محاوری با هم مکالمه احتجاج می کردن با هم دیگر این سیره در تمام ادیان آسمانی و سیره همه پیامبران که بیان احکام الهی میکردند بر اساس همین سیره بوده است اسلام در زمانی آمد که این سیره از ابتدای تمدن بشری بود و مستقر بود و بر اساس همین سیره نبی مکرم اسلام و ائمه طاهرین سخن گفتهاند. این سیره اقلایی مهمترین دلیل امضایش و اولین و مستحکمترین دلیل امضایش سیره نبی مکرم امیر المؤمنین ائمه طاهرین در تمام دوران ادای رسالتشان بوده است با مردم بهگونهای سخن نگفتند که برخلاف قواعد محاوره اغلای غلای عالم باشد اگر چنین بود اقراء به جهل میشد اقراء به جهل یعنی که متکلم سخنی بگوید و اراده و مقصودی از آن سخن داشته باشد در حالی که همه مخاطبین بر اساس قواعد مکالمه ای که بینشان است خلاف آنچهرا که او مرادش هست بفهمند این اقراء به جهل و در جای خودش ثابت است که به جل قوی هست و حرام است و ازلال و ناس به گونه سخن می به همان نحوی که دیگران با هم سخن میگفتند و میفهمیدند همین روش را نبی مکرم در بیان وحی و تبلیغ احکام امیر المؤمنین طاهرین اتخاذ کرده اند. بنابراین دیگر جای سؤالی باقی نمیماند. که اساس حجیت قواعد اصولی چیست؟ و کسی اگر این سوال رو بکنه آیون دقت بفرمایید مسائل ذریف علمی اصولی است اینها که امروزه از نایه بعضی از مدعیان فقاهت مطرح می شود که متاسفانه من باید عرض بکنم کسانی که هنوز که هنوز است برای اعتبار و علم اصول دنبال آیه و روایتی هستند و میگویند علم اصول در کدام آیه آمده هست کدام آیه میتواند دلیل باشد بر قواعد اصولی و کدام روایت دلیل است بر قواعد اصولی باید متاسفانه عرض بکنم اینها سر از علم اصول بر نیاورده هند. اصلا مبانی علم اصول دست اینها نیست ماهیت علم اصول را نشناختند در همین ای که خدمت شما از کردم در ضمن چند فقره و بیان کردم ماهیت علم اصول را باید در سیرهٔ محاوری اقلای عالم جست که نبی مکرم اسلام امیر المؤمنین ائم همه بر این اساس سخن گفتند اینطور نبود که نبی مکرم مددی را از آیه قرآن بگوید، روایتی را رو بیان بکند، حکمی از احکام الهی را بیان بکند برای مخاطبین خود که مخاطبین غیر آنچرا که از حرف هم دیگر میفهمیدند از حرف او بفهمند. اینطور نبوده. اره اساس همانچرا که با هم سخن میگفتند، احتجاج میکردند، میفهمیدند، استلال میکردند؟ نبی مکرم و ائمه بر اساس همون با اونها سخن میگفتن حتی در اعتقادات ولی البته آیاتی که خب اونها محتواش محتوای عقلی است ریشه در عقل دارد خب طبعا اونجا مترقب این بود که باید ادله عقلیه بیاد تبیین مراد بکند در این گونه از آیات شریفه یا روایاتی که در زمینه توحید و مسائل صفات جلال و جمال و اونهایی که مبتنی بر عقل بود خب این یک نکته علاوه بر اینکه آیات زیادی عموما و خصوصا و روایات زیادی برای قواعد علم و اصولی وارد شده است سیر شبر الاصول الاصلیه نوشته است در همین قسمت یعنی مبانی علم و اصول بر اساس روایات بر دیگران و دیگران دیگران خب ما عمده اینها رو نگاه کردیم و در خد در چند کتاب من به این قواعد اشاره کردم به آحاد قواعد اصولی که ائمه معصومین علیهم السلام به این قواعد استلال کردند با آیات شریفه قرآن استلال کردند بر اساس قواعد اصولی برای فتوا و احکام و پاسخ مخاطبین خودشون آوردم در اینجا بسیار از این روایت را آوردم حتی در سیره اوغلایی بس به سیره اوغلایی استناد می‌کردند و بر اساس این استلال می‌کردند و فتوا می دو، و حکم الهی رو بیان میکردن برای مردم شما نداری قاعده ای از قواعد اصولی که مورد استلال ائمه علیهم السلام واقع نشده باشد بر اساس این قواعد روایات رو الغامی کردن احکام رو بیان می کردن آیه شریفه و ما السلام النبی الا بلسان قومه الا لیبین لهم الا بلسان قومهی لیبین لهم هیچ پیامبری را ما نفرستادیم مگر به بلسان قوم چرا لیبین لهم یعنی لسان قوم مقدمه و سبب بیان قوم است بیان قوم بیان احکام برای قوم متوقف بر مراعات لسان قوم است اگر نبی و پیامبر الهی لسان قوم را مراعات نکند گفتارش بیانش تبلیغش تبیینش بر اساس لسان قوم نباشد اساسا تبیین حاصل نمیشود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم خب گرچه لسان قوم مصداق اتمش همین لغات هست اما رابطه‌ای که لیبین لوبی... لهم با لسان قوم دارد این است که باید تفهیم و تفهم متوقف بر رعایت لسان قوم باشد خب مسلم است که قواعد محابلی نقشه اول را در تفعیم و تفهیم دارد. به همین ملاک، به ملاک توقف لیوبیین لهم بر مراعات لسان قوم خود این سیاق، این سیاق در این آیه شریفه به این لسان ظهور میدهد که مقصود از لسان فقط لغت چی نیست. بلکه لسان آنچرا که از شئون لسان هر قومی است که دخیل در تفهیم مراد و تبیین مقصود هست اونه ظهور واضحی دارد بنابراین این آیه از آیاتی است که میتوند اشاره بلکه دلالت واضح بر حجیت و اعتبار قواعد اصولی داشته باشد چرا چون تبیین برای قوم متوقف بر این قواعد محابری است و والا تبین حاصل نمیشد این اساس جایگاه علم اصول است در اعتبار اما میاییم ببینیم که کدام یکی از این قواعد اصولی دخل و ربط و نقشی در استنباط فقه معاصر دارد اعلم میکنم تمام قواعد اصولی بلا استثناء در استنباط مسائل مستحدثه فقه معاصر دخیل هستند اهل فن می شما از همون صيغه افعل ظاهره تن فی الوجوب ویا سیغت و یا صيغه لا تفعل ظاهره تن فی گرفته تا ماده امر و تا بحث مفاهیم و مسائل عموم خصوص اطلاق و عموم و و و تمام مباحث با الفاظ اینا همون که در استنباط بقیه احکام الهی دخیل هستند لا شک و لا رید که در استنباط مسائل مستحدثه هم دخیلند اما بعضی از این قبائل نقش اول را دارند و بسیار بسیار کاربرد دارند من جمله آقا این است که اطلاقات و عمومات شرعی و اینها بر اساس شمول أرضی و شمول طوبی که دارند همه مسادق خود را شامل می‌شود یعنی هر عمومی هر اطلاقی هم مصادق عرضی دارد هم مصادق طولی و عمود ازمان به این معنا که عموم به دلالت بزنگی تمام مصادق تمام مصادقی حدیدی عام متعدد یا مجوع را جواب دیگر حالا این مسادیر که در اصل نفیه مطرح باشد و یا اینکه در بعد بعد بعد از منش ایجاد شود چون تمام این اطلاقات و احکام به نعت بدیه حقیقی الغاء می به نعت بدیه حقیقی یعنی البدیه الحقیقیه یالقضایا الکلیه التي مقدر و مطلعات ها و افراد ها و نصادیق و ها و طبیعی متعلق ها این تمام این قضای حقیقی است که اون چرا که موضوع حکم واقع میشد متعلق واقع واقعی میشد اینا مقدر الوجود مفروض الوجود فرد میشند که علا فرض تحققش در هر زمانی هر مکانی در هر جایی در هر برهی از تاریخ تا قیام قیامت تحقق پیدا بکند این رو شامل بشد اساسا خطابات شریعی مطلقه و عامه بر اساس وزان و, و سبیل قضایه حقیقیه الغامی شد و شعن قضایه حقیقیه این است که اگر تا قیام قیامت هر مصداقی از این عام ایجاد بشد فرقی بین اون مصداقی در مستحدث در آخر الزمان و, و بین مستاقه موجود در اصل نبی مقردم فرقی چی آقا؟ نیست حقیقی بنابراین شما تمام مسائل مستحدثی رو که حالا شما میبینید در بحث حالا تشریف باشد، در بس معاملات باشد انواق میمه باشد, باشد و یا حقوق معنوی باشد و تمام آنچرا که شما ببینید اینا همه جود مسادی به همون قمومات مختلفات هست مثلا بیمه خلاصه این بیمه بی یا در عمد وی داختریت یا هبه منش بوده یا هبه منحقظه و یکی از اینها بوده خب اینها چیزی جود مسادی از بود یا بیست و این هست معنای قمور بایاته تبری که بارد شده هست از قرآن آخر یه جنی مجر شمس و قمر یعنی آیات جلیف قرآن به نظام هر باسه با اون قموم و اطلاقی که دارد مثل خبشی جمونه تا دنیا دنیاست می تابد. و آن زوش و روشناییش تمام عالم را ها زمانی که دنیا ها بر جاست شامل می شود و همه اینها را می تابد و از تابش او تمام بشریت تا قیامت بهره می گیرد تمام حیوانات تمام موجودات عمومات قرآن مجید مطلقات قرآن مجید همینطور به گونه شارع مقدس و خدای تعالی تشریع فرموده است الاسخبیل قضیت الحقیقیه یعنی این یعنی مانند شمس القرآن و یجدی شمس و القمر یعنی اینکه این عمومات و این خطابات عامه و مطلقه در تمام دوران تاریخ بشریت مصداق پیدا می کند با صورتهای گوناگون با علمان مختلف با های مختلف با کیفیات مختلف و حیات مختلف همه اینها رو عمومات و اطلاقات کتاب و سنت فرا می گیرد همه اینها رو فرا می گیرد خب با این حساب شما هر مسئله مصلحدثی رو که نگاه بکنید می بینید که نیست مگر اینکه یک عمومی یا اطلاقی از اطلاقات آیات شریف قرآن مجید یا اطلاقات یا عمومات سنت روایات اهل بیت این رو چی میشه آقا؟ شامل میشد. پس بنابراین این مهمترین زیربنا و شالوده اساسی استنباط در مسائل فقه مستحدث و فقه معاصر خود این متلقاتم عموماتن این از کلام امام صادق سلام الله علیه در روایتی و کلام امام رضا علیه السلام در روایتی که در دو طریق معتبر آمده است علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرئو یا علیکم یعنی ما کار را تمام کرده برای بیان دین چگونه تمام کرده ایم؟ به این معنا که آنچه که از عمومات و مطلقاتی که می بایست الغا کنیم که همه مسائل شما را و همه ما یحتاج مسائل فقهی و شلی و مفتلابی شما را تو قیامت شامل بشد این کار ما انجام دادیم این وظیفه ما علینا الغاول، اصول اصول نه به معنای اصول مصطلح هست در این روایت به معنای قواعد کلیات همین کلیاتی که اثر کردم خطابات شریعه علاق بزان زان قضایای هست است این اهم از قواعد این اصلا قواعد فقیه است متش خود قواعد این اصولی که میگید علینا قواعد فقیه است چون اون قواعد محاوری در میان اوغلا بود این علینا معنا پیدا نمیکنن خب اگر بود شما چرا علینا پس این علاینا قواعد فقیه ما تا خود قواعد فقیه را استنباد کردن و استلال کردن و استخراج کردن اینا فقط بر قواعد اصولی است. هیچ ای غیر از قواعد عقلی حتی قواعد عقلی چون یکی از ادله علم اصول عقله حتی قواعد عقل مثل قواعد اختلال نظام که ما در بحث همون مبانی فقه فعال کردیم و بیان کردیم استلال کردیم مفصل که در این این خود عقل و حتی قواعد عقلی یعنی علم اصول چون هم ریشه در عقل دارد هم ریشه در کتاب دارد هم ریشه در سنت دارد فلزا این که فرمود علینا القاول اصول یعنی آنچه از قواعدی که میبایست بر عده ما بود بیان بکنیم بیان کردیم خود این قواعد که در کتاب آمده است و در سنت آمده است لیست الا عمومات و مطلقات کتاب بس کتاب این. همین عمومات و مطلقات مراد این اصول است این اصولی که میگه علینا الغاء الاصول علینا اعم است از ائمه علیهم السلام و نبی مکرم و ذات باری خدای تعالی چون مفسر قرآن اهل بیت دیگه یعنی ما قواید رو اون مطلقات رو اون عمومات رو که منشأ تفریع فرو هست برای شما بیان کردیم و علیکم انتفرو الا علی اساسن آقا الا اساس همون قواعد محاوره‌ای و علائی که ما خودمون یعنی ائمه سلام در بیان احکام بر اون چی آقا می کردیم چگونه ما اهل بیت فروع را از آیات شریف قران استنباط و استخراج میکردیم ما هم به شما کلیاتی، مطلقاتی، عموماتی القا میکنیم که شما کلیه مسائل فرعی را تا قیام قیامت از این قواعد چیکار بکنید آقا؟ استخراج بکنید. پس اصول شالوده قواعد فقهی میشد. اصول اساس استنباط هر مطلقی رو که فقیه آقا استظهار می کند از آیه یا یک روایتی این بحث ها و اختلافات عمیق و شاخه های زیاد و نغز و ابرام های فرامان دارد خیلی بگو مگوها هست فقیه فهل می خواهد که بیاد چگونه از قواعد محاوری اقلا یعنی قواعد اصولی استفاده کند بر اساس اون قواعد اصولی این مطلق را این اطلاق را با اون گونه‌ای که مراد شارعه است استباد بکند و استخراج بکند با اون را تطبیق بکند و تمام مسادقش تفریه بکند جایگاه علم اصول در درجه اول در اطلاقات و عمومات باید جست. و همچنین مثل خود سیره یعنی بفرمایی شما سیره اغلا مورد اعتناع شاره هست تمام سیره های اغلایی که در زمان نبی مکرم و ائمه علیه السلام بود همه اینها مورد امضا بود مگر آن سیره هایی که روایاتی از جانب ائمه علیه السلام آمده است، با آن را تخته کرده اصلا فرض کنید شما معامله بفرمایید که سبی کودک نه کودک غیر باله، دوازده سال، پسر دوازده سال خب سیره اقلا برای این بود که این معامله رو ترتیب اثر میدادن، ممکنه بدن و این ادعا ادعای جزافی نیست که اقلای آلم بچه حالات سن بلوک برای اقلا موضوعیت ندارد و اونی که موضوعیت دارد تجربه است و تمیز است و فهم خب، ممکنه سیره اقلا باشد اما شاره این رو چکار کرد آقا؟ تخته کرده در بحث معاملات در بسیاری از سیره در بعضی از سییراه البته شاری رو تخته کرده چون براش حدود و قیود ذکر کرده است. اما اینا زیاد نیستن درصد صد سیر های که شاره رد نکرده است نسبت به آنانی که رد کرده است اون رد نکرده ها بسیار بسیار, بسیار بیشتر است. فلذا سیره اوقلایی عالم بر بسیاری از امور بوده بعضی از مصادیق نوپیدای آنها در تق معاصر رو خب میخوام بگیم همون سیره ها قابل استلال هست که ما تمام سیره های مستحدثه رو ودیده و یا مسادیقی از همون سیره های موجود در اصل عیمی میدونیم چون اصل سیره اوغلا سیره ای نیست که آقا اختصاص به زمانی داشته باشد اصلی داشته باشد دونه اصلی ماهیت سیره اوغلا این است که همه اوغلا ی عالم به ما اوغلا خب این قبل از اسلام بودند بعد از اسلام هم چی آقا؟ هستن زمان اسلام بودند پس اغلا وجودشون و سیرهشان اختصاص به زمانی دونه زمانی چی آقا ندارد پس نمیشه وقت سیرهی الان باشد و ریشه در اون سیره چی آقا؟ نداشته باشد به داخل در فرض کنید که سیره بر عقد بیمه جاری شده در به معنوی، به عقل اختراق مثلا جاری شده و یا بعد یه از سیره های دیگری که مستحدثه هست ایجاد شده همین اینها ریشه در اون سیره ها دارد برای همین ما مرحوم شهید سعد که میگرد نه این سیره ها نمیشد مورد رد بشد چون وجود نداشت در آن زمان که شعره متمکنی از ردش باشد و در کتاب رد کردیم این حرف رو که فیلم درستیست این حرف سیره و غلاءی مستحدث ما نداریم معنای واقعی کلمه بلکه مسادیق سیره های مستحدث موجود در زمان احمره مسلام داریم که این مسادیق و اون سیره هستند هستن بنابراین سیره های هم نقش اساسی در مسائل فقه معاصر دارد قواعدی مهمی هم همچنین در بحث فقه محاصر مهم است که اینا زیادن ما اصلا یک دو جد کتاب در مورد القبائد سیاسیه که نوشتیم اینا همه مربوز به فقه محاصر میشد من جمله مثلا فرض کنید قائده نفی سبیل ولن یجعل الله و علی کافرین و للمؤمنین سبیلا خب این رو گفتیم همه این فقه آنجو معنا کردن از شیخ توسی قدمه ها تا متاخرین که صده ها برش مترتب کردن من این قاعده رو در کتاب همون مبانی فقه فعال مفصل بحث کردیم نوشتیم گفتن یعنی لن یکتب الله تعالی معنای این آیه این است لن یکتب الله تعالی در دفتر تشریعی حکماً موجب العمل بهی سلطه کفار علی المؤمنین یعنی خدای تعالی در قرآن خبر داد که ما هرگز حکمی را تشریع نکردیم که عمل به اون حکم موجب سلطه کفار بر مؤمنین بشه همین قاعده میدونی چقدر ثمر داره چقدر مسائل مستعددس دقیله تمام معاهده های برجام و غیرو و غیرو و غیروی که نظام جمهوری اسلامی با کشورهای دنیا و مستقبیرین عالم کشورهای کفر و دوبال کافره عقد قرارداد داد می کند اینا همه محکوم به این قاعده هست یعنی اگر باشد چنین که اون ماهیت اون قاعده بندهای اون قاعده مواد اون قاعده قرار داد های اون قرار داد طوری نوشته بشد که اونها بتونند بر ما بر تکی بر این مواد سلطه پیدا بکنند این در اسلام مشروع نیست اعلام میکند قرآن مجید در اول سوره توری که بدون بسم الله تنها سوره ایست که شروع شده که من الله و رسوله اللذین آهدت من المشرکین اینه مشرکین ماهد این همونایی که با اینا قرار داد بستید بعد فرمود که بله واتموا الیهم احدهم ما لم یظاهرو علیکم احدا تا زمانی که با دشمنان شما این نایی که با شما قرار داد کفار همدست نباشند پشتیبانشون نباشند بلم ينقصوكم فتدین. ما لم ينقصوكم في الدين ولم عليكم احدا و این که به دین شما قانوت نکنن ضربه نزنن خب بنابراین راحت میتونیم خیلی واضح فقی میتوند فتوا بدهد به خیلی روشن این قرا نویسایی که اومدن به پیامبر شما جسارت کردن به دین شما جسارت کردن به هویت مذهبی شما دین شما آین شما عزت شما شوکت شما هر روز خودشون تبدیل به دشمن شدن و خب این دونید فقره شرط کرده این قرارداد تا زمان مشروط که به این وادی وارد نشن اگر شدن همان به حرمت و بی اعتبار بودن و غیر مشروع بودن این قرارداد همان خب اینها مثل قاعده نفی سبیل این زیادی داره در امروز ما و یا فرض کنید که شما قواعدی مثل قاعده خود اصل بلایت فقیه آقا اصل ولایت فقیه از اون قواعد مسلمی است و مهمیست که ریشه در قرآن مجید دارد اینکه امام راحل میفرماد ولایت فقیه یک اصل مترتب ولایت فقیه همان استمرار ولایت رسول خداست خب ولایت رسول خدا چه بوده چه گونه بوده چه اعتباری داشته چه اهمیتی داشته اهمیت ولایت حکومتی رسول خدا مقصود است امام راهد میکرد فقیه همون بلایت رسول خداست بعضی نفهمیدن کلام امام رو اشکال کردن که خب کجا میزد فقیه میتونه بلایت رسول خدا داشته باشد او دین رو تجریم میکرده او بلایت تکبینی داشته نه این بلایت بر حکومت مقصوده یعنی اینکه فرمود آیه شریف فلا و ربک رب که در اولین سخن خوندم فلا و ربک رب لا یؤمنون ای پیانبر غسم به فلا چنین نیست. اینایی که ادعای ایمان دارن میگن ما ایمان آوردیم ما مؤمن هستیم به رسول خدا در زمره مؤمنین هستیم شعار ایمان میدن فلا چنین نیست و به خدا قسم چرین نیست اینا مؤمن نیستن دروغ میگن ما مؤمنین مگر اینکه حتی یحکما فیما شجره بینهم مگر اینکه تو را ولی امر خودشون قرار بدن فیما شجر فیما شجر یعنی تمام اختلافات و منازعات سیاسی اقتصادی نظامی و و و و شجر بینهم اون چرا از اختلافات یکی از مهمترین اختلافات در همان زمان رسول خدا جنگ ها و غزوات شد اختلافات سیاسی بوده اختلافات فرقی و طایفه‌ای بوده و در زمان علی المامین هم اینطور حتی یحکموک فيما شجر بینهم تو ولی هم و حاکم قرار بدن ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت حتی در قلبشان هم از حکمی که تو کردی احساس سنگینی نکنن ببینید آقا من چند بار اینو چند جا عرض کردم اینکه که ما تسلیم بشیم حکم قاضی رو حاکمی رو و دیگه امرا این چند مستاق دارد چند نوع دارد یه موقع تسلیم میشیم از باب این که میگه خب ما قدرت نداریم قدرت حکومت چاری نداریم باید تسلیم بشیم یه نوع تسلیمه یه نوع که نه. میگد من ایمان دارم اگر من تسلیم نباشم یعنی من ایمان ندارم دیگه خودش تحمیل می کند, می این خودشو تحمل میکند می قبول اوند رغم اینکه قلبش تن درد نمیداد قلبش راضی نیست به این حکم به ضررشه دیگه همیشه اشخاص که قضاوت میرن همیشه به نفع همه طرف که نیست که یه طرف قطعا حکم قاضی حکم وادی هم علیه شه. یه طرف به نفعشه این تسلیم شدن این که مخالف هست مهمه اون که موافقه خوب به نفعش بود روشنه اینه که به حکم علیهش بوده این تسلیم بشد میگه خب من که ادعای اسلام دارم چرا رو قبول بکنم؟ یه تسلیمی تحملی هست بر اساس قبولاندن خود بر اساس مبنای ایمان این کار خوبیه نمیگیم نیست ولی آیه ای رو نمیگه آیه میگه حتی در قلب خود در سمیم قلب خود هیچ گونه احساس سنگینی و استنفار از حکم ولی نکند. نکنن اصل ولایت فقیه واقعا در زمان ما که استمرار رسول ولایت رسول خداست با روایاتی که آمده است مثل امام صادق سلام الله علیه که فرمود که بعد به اون تواقید رو نکنید علم تر ایرالذین یز انهم آمنوا بما ما اون زده علیک و ما اون من قبلک یوریدون أن حاکمون إلى تاغوت و قد امرو ایک رو در زیر همین آیه امام صادق با اصحاب خودش گفت که رجو نکنید به تواقید در مسائل مختلف سیاسی خودتون که الان شامل مثل عربستان امثال هم میشد که مرجع محکم اینا مستقبلین آلم هستن کسی بین اینها حکم نیست جد اونها فرمود امام صادق یا کم حذر باشید که در اختلافات به تواقید رجوع بکنید اون وقت اجعل و بینکم رجولن نداره في حلالنا و حرامنا و روا حدیثنا نداره في حلالنا و حرامنا و حرف احکامنا فا قد جهتو عليكم حاکما یعنی این به قول شیخ انساری و یردو بهی بعد فرمد فاني قد جهتو عليكم حاکما یعنی بنیانگزاری اساس ولایت متدقی فقی اون وقت اثرش در فقیق معاصر ما زیاد است چون خیلی از احکام اولی در یک مقته از زمان مصدعت اسلام و مسلمین نیست که برای اساس اون بخوان عمل بکنن نه اینکه که خدای تعالی به نحب کلیه حقیقی جلب کرده درش مصدعت نیست نه چنین نیست اون درش مصدعت تامه احکام حج سوری در قرآن برام حج آمده است در ممکنه فقی به قول امام راهل حکم بکنه به تحتیدی حد در یک زمانی برای اینکه که فرض کنید شما عربستان و این مرده آمریکا و استعمار و است... بگن ما شما رو راه نمیدیم به خانه خدا و حج مگر اینکه فلان قرارداد فلان قرارداد استکباری و استعماری رو امضا بکنی خب اینجا فقی چیکار میکنه ولایت فقی میگه ای فقی تو وظیفه داری حکم بکنی برای حفظ مصالح اسلام مسلمین و عزت و شوکت مسلمین به تأثیید حج در یک برهی از زمان که موجد بشه زهابه الالحج اصل کیان اسلام رو چی آقا؟ در خطر بندازد خب مجموعه جنبندی در این کلوات این است که جایگاه علم اصول در قویترین ترین سیرهای نبی مکرم اسلام و ائمه طاهرین دارد علاوه بر این بعضی آیات شریفه قرآن عموماً مثل که خوندم و خصوصا، در بسیاری از قواعد اصولی فقها به آیاتم کرده کردهاند و همچنین بفرمایید که در سیره اوغلا ریشه دارد و سیره اوغلای که مورد قبول و عمل بوده و در فقه مستحدث در درجه اول اطلاقات و عمومات کتاب و سنت هستند که تمام مصادیق مستحدثه فرو مستحدث جزء افراد و مصادیق طولی و عرضی این مطلقات و عمومات می باشند سیره بغلا هم در حقیقت یکی از اون مهمترین مبانی است که فقه معاصر مبتنی بر اون سیره هست و همچنین قواهد اصولی دیگری که عموماً دخیل هستند و ما در این جلسه یک مروری بر مبادی فقه معاصر داشتیم انشاءالله که بتونیم به نحو مفصل در جلسات دیگر در خدمت دوستان باشیم به برکت سلوات بر محمد و آل مسلام